بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه اجمعين اما بعد ما دار درس گذشته دو تا مسئله خیلی مهم رو داشتیم بحث البوت بوت شریف ترین چیزی و بزرگترین چیزی که انسان میتونه به اون ایمان خودش انسان تخوییت بکنه میتونه به با، انسان میتونه با اون به خدا نزدیک بشه هیچ چیزی بالاتر از علمی علمی که خداوند رحمت کرده بر پیامبرانش علمی که با اون خداوند خواسته امت‌ها را نجات بده علم شرفش بالاست یکی از بزرگترین چیزهایی که انسان میتونه به خدا برسه همین علمه علم, علم به کتاب و سنت علم به قرآن خداوند فهم و قرآن بعد از اون بحث تفکر در مخلوقات خداوند بود نه نه تفکر تفکر اشعری شک در خداوند و رسیدن به خداوند با شک نه اون شک معتزله و اشعری بعد از اون از جمله مسائلی که هست انسان میتونه به اون به خدا نزدیک بشه علمش رو قدیب کنه و ایمانش رو قدیب کنه علم عمل عمله به اون علم وصف آن چیزی که در شرق آمده طبق آن چیزی که در سنت مصطفى و در قرآن کریم اومده عمل سبب میشه که انسان به خدا نزیگتر بشه عمل سبب میشه که انسان حسناتی کسب بکنه سبب میشه که آتش جهنم را بر خودش ترد بکنه و خدا منم چیزی غیر از عمل از انسان نقاطه و ما امیرو ایلالی الله مخلصین له الدين حنفا فما چیز غیر از عبادت غیر از عمل به علم از منافقه و ما عمره الا ليعبدوا عبادات بکنن پرستشم یک عمله وفق چی مخلصین له الدين اخلاص شرط اول شرط دوم له الدين متابعت با درش باشه اگر متابعت نباشه قابل قبوله ایمانو زیاد میکنه نه انسان از خدا دور میکنه متابعت نباشه عمل قابل قبول نیست شرط در صحت عمل چشیده اول شخص بوت مؤمن باشه که خدا دلش بپذیره چون اگر مؤمن نباشه خداوند منذرات عملش قابل قبول نیست شرط دوم اخلاص باشه برای خدا نباشه خداوند قبول نخواهد کرد ریا باشه قبول نمی‌کنه خداوند شرط سومش متابعت باشه طبق وحی باشه اون چیزی که خداوند نازش راضیه حالا میاد در شرط عبادت بعد از بعد از بحث توحید قهادم در شرط عبادت شروط عبادت تعریف عبادت مهم اینه که این بدون عبادت چیزی که خدا دوست داره ماوور میتونیم بدونیم که این فلان عبادت خدا دوست داره. غیر ممکنه با چیزی که خدا دوست داره ایمانمون زیاد بشه با زنا و با فلان و با یا با اختراع بعض از عبات ایمانمون زیاد بشه چون نمیدونیم خدا یا دوست داره نداره. پس با آن چیزی که خدا آن رو دوست داره میتونیم ایمانمون رو تغییریت بکنیم. کل اینکن تشبونم الله فتبعونی یوشفکم الله و یمفلکنتونو بکن. باقع اگر محبت خوددا من را داریم tasliq erbukuni az men tabeiat bukuni yani az rasulullah tabeiat bukuni bugey muhammad agar agar khudaman ra dus dorid va mahabbat es dorid az men tabeiat bukunit peiravi bukunit on chizi ki men anjam midam anjam bedid salu ka ma raeitu mune wa usalli kunu anni manasikakum bayan mikunan namaz bukunit on chonan ki men namaz bukonam manasik tok az men bigirid laqad kana lakum fi rasulullah uswatun hasana ul binikis baraye ki chi pishwa عمل کردیم به آنچه که رسول الله صلی الله علیه و عمل کردن چی میشه؟ یحببكم الله. محبت خدا اول این اگر خداوند ما رو دوست داشته باشه چی میشه؟ ما به خدا نزدیکتر شدیم نشدیم نشدیم. پس میشه انسان به خدا نزدیکتر بشه. یحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم. گناهاتون هم میام مرزه پس سبب میشه که انسان منزلتش در خدا بالاتر بشه. منزلتش در بهش بالاتر بشه. عذابش کمتر بشه. حسناتم کف بکنه. چون رسول الله الگوشه پس خیلی چیزها میشه انسان با عمل کسب کرد با عمل میشه انسان با قیام و و تحجد با خوندن نماز شب با سنت های راتبه از کار بعد از نماز انسان میتونه به خدا نزدیک بشه ما نگاه بکنیم به ازور برای خودمون کسی که نماز قیام میخونه و کسی که نمیخونه چقدر فرق دارند با هم خودمان در سوری زمار چنین بیگه امن هو قانتون آنا اللی ساجدا و قائما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكرون قلوا الالباب اما هو قالت الاناء الليل انكسك دار شغونگاه ميشين نماز ساجدا وقائما فدرت سجود میکنه و ميسه نماز ايستاده نماز میکنه و از خدا از اخرت ميترسه مثل علم نداره و انجام نميده نه وقت مثل هم لسان. و اون کسی میتونه درد بکنه که صاحب بصیرت باشه، صاحب درک باشه، خداشو شناخته باشه، خودشو شناخته باشه و نیازشو نسبت به خدا درد کرده باشه. پس عمل به اون علم سومین چیزی است که انسان رو میتونه به خداوند نزدیک بکنه. از اون چیزهایی که انسان ایمان انسان رو زیاد میکنه، محافظت بر خود ایمانه محافظت بر ایمان Mami dir dar do chiz kholasash bokoni. Khodaman dar Quran chin mige waja'alna minhum a'imatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Waja'alna minhum a'imatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa بعد از این آیه به صبر والیقین تنان الامامت از الدین صبر و یقین دو, دو یه مهمی هست که داعی با داشته باشه تا به چی برسه؟ امامت امامت در دنیا و آخرت در آخرت نجات پیدا بکنه ابراهیم علیه السلام باید بلگوی باشه ابراهیم چطور بلگوی شد؟ چطور امام شد؟ چطور به درگه امامت و به درجه نبوت و به این شرف و به این مکانیت رسید با همین صبرش با همین یقینی که داشت نسبت به خداوند حالا در بحث توحید خواهد آمد ابراهیم چه ویژگی‌هایی داشته در ثروتش در توحیدش ما میتونیم وجه استفاده بکنیم لیکن حالا این چیزی که مد نظر من هست در این آیه که باید روش محافظت داشته باشیم چیزی که باید یک مؤمن حقیقی طالب علم حالا چه طالب علم باشه چه غیر باید داشته باشه تا ایمانش قوی باشه. قوی باقی بیمونه. تقویی از ما دو چیزی که ازش می نالشمون از دو چیزه. دردمون در دو چیزه. یک شهوت دو شبهه شک و شبهه بچی؟ شهوت. شهوت را می شه با چی باید دفت بکنیم؟ با چی می شه دفتش کرد؟ با علم؟ خیلی با علم ترمانه میشه با صبره با حبس نفسه شیطان با این دو چیز مبارزه میکنه با شهبت و شوکه با سبر و جعل من من هم امتا میهدونه با امرنا لما صبرو اول سبر طالب ایل خودشو, خودشو حبس بکنه سبر اینه حبس نفس حبس نفس از انجام دادن محارن سرومات حبس نفس روی طاعات خداوند حبس نفس از نارضایتی در قبول قضا و قدر خداوند حبس باید بکنی خود در در مقابل هوای نفس با شیطانت باید مبارزه بکنی، باید خودت رو حفظ بکنی، روی طاعات خودت رو نگه بداری، از کسی نترسی، اون کسی که باید من ندارد، اول و آخر خداوند. اما شبه دردش و علاجش علمه، باید علمیات که با اونو کنصا بکنه، باید علمیات که اونو رو به خدا نرزی بکنه، به خاطر همین دیگه و جاء الذين من ائمه تيهدون بامال لما صبروا وكانوا باياتنا يظهرون ليسفتي که داشتن یقین یقین قبل از اینکه موکال قبل از اینکه سبب داشته باشن علمم داشتن یقینم داشتن پس علم صبر دو وسیله اصلی برای نجاست برای محافظت بر ایمانه برای تخفییت ایمان اگر میخواهید طالب علم حقیقی باشید اگر میخواهید واقعا نجات پیدا بکنید اگر میخواهید واقعا ایمانت قوی باقی ممونه باید این دو چیز داشته باشی معاهدت بر علم پندن قرآن تلاوت قرآن و تدبر در قرآن و حضور در کلاس ها وشنیدن کلاس های علماء یا علماء اگر نیست حتی اقرد طلبه ها مذاکره علم یک وزیلی برای تخوییت ایمانه یادتون نره اون حدیثی که دل ها رو به صدا در میاره دلها رو میشکنه وقتی که ف الله به صحبه گفتن که بمودن که شخص میاد أتي الحسنات كما مثللي جبل ال مثل کوه تمامام کوه بزرگ ببيغاء انغية حسنات خیلی بزرگ میاد لیکن هو ان مذرات اون اعمالش شخص صالحیه اعمال خیلی صالح انجام زده حسنات زیادی داره مثل کوه تمامهاام واف خاک برای خدا بوده. پاک بر روی سنت رسول الله هم بوده لیکن پوچه چرا صحابه این مو... مو... این علامت سوال جلوشون میاد چرا اینها این چنین عقوبتی خداون نصیبشون کرده چرا تذنششون کرده و چنین عقوبتی براشون گذاشته که این عملشون قبول نشه اولئک اذا خلوا بمحارم الله انتهاكوها خرمات خدا رو میش... میشکسنه او کما قر الله تعالی و... زیر پا می گذاشتن ما خودمون در نظر بگیریم در خلوت سرمون علانیتمون در نظر میگیریم چقدر ما واقعا از حرام دور بودیم از غیبت، نمیمه، دروغ نمیدونم فعل تمام این ها چقدر ما واقعا پرهیز داشتیم حسناتو زیاد داشته باشیم، روزه بگیریم، نماز بخونیم لیکن مواظبه خودمون نباشیم مواظب گناهانمون مراقبت نداشته باشیم از خدا دور باشیم خیلی مهمه مغرور نباشیم به خودمون به اعمالمون به نمازمون مغرور نباشیم بدونیم که روزی همه جلو خدا قاهی میساد محاسبه کھایم شود تک به تک اعمالمون فرد به فرد اعمالمون محاسبه کھایم شود باید ایمانمون با این تذکرات با این مذاکره با این جلسات با تقویات بشه باید به حالون تحولش برگردونده بشه و یا بیشتر بشه خب از جمله مسائلی که در ضمن این وارد میشه، معاهده با خلاابت که شفاست و نزلوا من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمن رحمه. رحمته قدس ربنا. چرا نمیشه این در یک ساعت، دو ساعت قران بخونیم؟ بعد از اینکه ما اتفاقاً این جزء رو جزئی. کسی که قران نخونه بدبخت. کسی که قران نخونه ایمانش واقعاً دیگه شاید به کمترین و پسترین جاش برد. امتحان بکنه. اگر انسان روی قران ما حدت داشته باشه، قران نکنه، غمش غمشو همش، خوابش و بیدارش با قرآن نباشه، این شخص واقعا ایمانش رشته‌اش باید در فکر و چاره اندیشی برای ایمانش باشه که ایمانش رو تقویت بکنه. این قران اگر انسان از دست بده دیگه چیزی نداره. ما چیزی که دلمون بهش خوش کردی این قرانه. چیزی که به سکونت میده، آرامش میده این قرآنه. قرآو نداشته باشیم واقع واقعا, واقعاً محروبی واقع غریبی قرآن باید همیشه داشته باشیم قرآن باید همیشه بخونی قرآنی که رحمتته و این قرآنی که خدا من درست بربارش می در, در اساب اسراء یید و دوالین اللا خصه جز این اشخاص نباشیم شدجتون علینا نباشه بر ما حجت نباشه روزت یم یاات قرآن گردن ما رو بگیره از چیز چیزهایی که باید ما رو معهلت داشته باشیم معلت بر تدبر بر قرآن فللا اگر تدبرون قرآ هم اقلوب افال و ها افلا نمی میخوان قرآن درش طلب در بلده باشن موقعجز همین آیه هستیم. آیا خواستیم آیا واقعا کهانود داشتیم بر تدبر بر قرآن فهم قرآن چقدر وقتی رو برای خدا داره؟ 1400 چهارصد خور دیده زار در روز داریم چند دقیقه از این 1400 دقیقه دیقیه هزار برای خدا بوده. 50 دقیقه دقیقه کم نیست 1/14م 1/10م کم نیست که برای خدا ببینید خدایی که ما را خلقت کرده برای خودش و ما خلق کردیم نه و انسان الا چقدر ما واقعا عبودیت داشتیم در سیرت مصطفی در محاسید دین تامل بکنیم فکر بکنید سیرت مصطفی صلی الله علیه روشش جهادش کوششش عبادتش یک وسیلیگه یا یکی از بزرگترین وسایل برای حفظ ایمانه نگاه به سیرت سلب سیرت علماء علماء چطور بودن؟ اگر اون علماء رو در نظر بگیریم اون اوشافی که داشتن دیگه امروز فکر نکنیم که اون عالمی که واقعا عالم بودین الان داشته باشیم راست میگه رسول الله قصد و سلم زمانی میاد که علماء کم میشن و مثال إن الله لا يتزعو هذا العلم انتزعو إنما يتزعو بقض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أن اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتو بغير علم فضلوا واضلوا إذن علمه هم جد خطب لأنه يكون بلقض العلماء علماء هم دان دان جهال بيان جهال مدان فتوى ميدانو فتوى حكم ميدان غمراه ميدانو غمراه إن مشكلة كما دارشق وقع حاسيم غمراهي عدم علم، جهل پس این وسایل تطبیقیت ایمان، وسایل زیاد کردن ایمان. خب میمونه چه وسایلی هستن، وسیلهایی هستن که ایمان رو ضعیف میکنن گفت چیزهایی که ایمان رو بالا می‌برن. ضدش برض اونها چیزهایی هم هست که ایمان رو پست میکنه و ایمان رو پایین میاره. به پایین ترین روزبه ها و مراتبش می رسند. چیه؟ جهد. اولین چیز جهد. اولی بدترین مرض. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستا. فلاح و راستگاری برای اون کسی که تذکیه بکنه، تربیت بکنه نفس خودش برای ایمان، معاهدت ایمان داشته باشه. و کسی که اون ایمانش رو پنهان بکنه، عمل نکنه به اون ایمانش، دنبال علم نره دنگول دین نره به پس تر اینجا و به خسارت رسیده و به بدترین زیان رسیده فقط خوابه یعنی زیان نمی‌کرده کسی که با پنهان نکردن حق و با پنهان کردن ایمانش با انجام داد با انجام نیکی ها عمل نیک و انجام دادن گناه ها این شخص به این نتیجه و به این رصفاهی برسنه خدا من در باره جهل چیلیم قل اف غیر الله تأمرونی اعبدو ایوها الجاهلون ایوها الجاهلون مردم چی میخواد؟ غیر خدا چی میخواد؟ بدت چی میخواد؟ مر از خدا دور بکنه گناه چی میخواد؟ شیطان چی میخواد؟ مر از خدا پس جهل اگر باشه شبه و شهوت بیاد علم نباید نباشه که بیاد خونساش بکنه جواب بده ما هم کتاخ بیاد ما هم نگیم به مردم چی میشه حق خدا را بجاید اطاعت بکنم غیر از خدا بند از غیر از خدا بند بترسم ایوها الجاهلون جهن بر این کسان کتاخ بیاد جهن بر این کسان حق خدا رو به جا نیاره دوم این چیز غفلته Ghaflat, i'rraget, hushdoddan, feramjushi. Alle hver kudde om tæk-tæk migam. Ghaflat. Inna al-la-dien la-yar-gjoon l'gå-a-an-a. Wara-du bil-hya-at-i-ad-dun-ya. Watt-ma-an-u-bi-ha. dien hom ان الذين لا يرجون لقاءنا كسانك نمیخوان با ملاقات، ملاقات مرا دوست ندارن. در فکر مرگ نیستن، در فکر این فکر کردن فقط کردن میخوان مرج. و به این دنیاشون راضی، راضی هستند به این پست و منصبی که دارن، مکانی که دارن، به این جایی که رسیدن راضی هستند، به این خونه و به این کار و شغلشون راضی هستند. و ما انفه ها راحتن در اون کاری که هستن و لذین هم عن آیاتنا غافلون اونهایی که از آیات ما چی می‌خواد دیگه خداوند می‌خواد دیگه که اینها من, من اونها رو دوست ندارم من نمیخوام که اونها برای دنیا باشن من میخوام برای من باشن زندگیشون و خوابیدنشون و بیدار بیدارشدنشون نماز خوندنشون روزه گرفتنشون همه برای من باشه نفس کشیدنشون برای من باشه غافل نباشن از من دور نباشن چون من اونها رو خلقت کردم برای خودم و پامبراانم فر خودم برای خودم بلقد ثنا في كل اوم رسور الله وشتله بااقوت؟ پیانبراان برای چی فرزنه؟ غ از توشید؟ غ از ایمان که تویت بشه ؟؟ همش برای خدا خداون بوده. پس اگر این اهمیت داشته باشه این ایمان این توشید این حفته خدا چرا ما از خدا تور باشیم؟ چرا ما کمکاری می کنیمیم؟ چرا از حفته خدا تو نکنیم؟ چرا نهاس؟ دآ به رسول لو پاکیان را احیاب بکنی مبارزه با شر مبارزه با بدعت مبارزه با گناهان چقدر ما مبارزه کردیم خود خودون گردن ما نخواهد گرفت این شخصی که زنا میکنه این شخصی که دزدی میکنه این شخصی که مشروب میکنه این شخصی که فلان میکنه گذن کی اول اول را خواهند گرفت اول علما اول طلابه کسانی که وظیفه ادوی را بر عهده چرا اصلاح نکردید چرا مثل پیامبران پیشین سب نکردید چرا مثل پیامبران که با میشا رو بردن در گذاشتن و نصفشون کردن چرا بدون حساب نکردن اصحاب چگونه حساب کردن وقتی که مکه دعوتشون رو آغاز کردن چی کردن به رسول الله چگونه مبارزه کردن آیا لنسره ما چنین میکنن مردم این هم این کارو سر ما دروردن این شکایتمون هم کردن و نمیدونن به فلانجا و فلانجا هم رفتن عاقبتا چی میشه این هم شهید شدن در راه خدا رفتیم ولی با روی سفیدی با رضایت خداوند با دعوت پیامبران از دنیا بریم نه با رسوایی نه با اس حضرت الله میمدن با سنگ با سنگ سیاه و زیر آفتاب داغ میگذاشن شکنجهشون میدادن میومدن در ندن شکایت میگه یا رسول الله فاکی ما شکنجه ببینیم عذاب ببینیم توکی متاب بکنیم رسول الله راحت میشن خشید چرا صبر نمیگنین این دعوتت باید این این باشید چرا ان رجل کان من من کان قبلكم یؤتا فيوضع المنشار من, من فوق راسه فينشر نصفین از اشخاص پیسین امتهای پیشه میوردن قاطر كات ایمونش بر میگده میشا بر بگرده میشا رو میگد اصلا فرق نداره که بر بگرده ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء والزلزل حتى يئول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا نصر الله قريب اگر نصرت باید یقین داشته باشید باید صبر داشته باشید باید تحمل داشته باشید باید در وسط مردم رخنه بکنیم. باید بریم در وسط مردم مشروعاتشون رو حل بکنیم. اما اگر خودمون رو دور بگیریم کوتاه بیام کی میخوام درست بکنیم. کی میخواد وزیفه پیانبران را حیاب بکنه؟ کی میخواد از حق خداون دفاع بکنه؟ فردا خودو گردن ما را باید گرفته. پس غفلت نباید باشد. جزوه غافلی نباید باشیم. چشپوشی بکنیم. به زور چشممون چشمامونو ببندیم خدا من به ما بده علم داشته باشیم قرانو بخونیم های تفسیر باشه علاما بیان خدمت بکنن صحیح بخاری و مسلم و ابو داوود و فلان آن باشه علاما بیان صحیح و ضعیف مشخص بکنن بعد ما بیان راهشون بکنیم بذاریم یک روزی حالا بیاد که مردم بهش عمل بکنن نکنن تو کی مواعظ چشمشی بکنیم برای کی اصلا این وحی نازل شده کی میخواد عمل بکنه بس غفلت نبواد باشه عراضا همچنين پش دادنم همچنين و من يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له هري ابراته و من يعشو كتي كه دور باشه از ذكر من يك لحظه ثانيه به علم خدا دور شد باور بكنيد حلقات ذكر نباشه حلقات قران نباشه هي مسجد نماز باور بكنيد ما از اون شخص مکروه كارم بدتر ميشه چرا چون ما رو خدا را شناختيم و به خدا پش داديم عاقبت چی میشه عاقبت نسیانه که خدا من میگه در بحث فراموشی و فراموش کردن خدا والا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم فانساهم فانساهم انفسهم بله این نسیانه که مؤاخذه میشیم نه اون نسیانی که انسان دست خودش نیست یه چیزی ذاتن فراموش میکنه بلالا تاخیرنا ان نسینا بل ان طبب ما خودمونیم قرآنو ما خودمون مراجعه نکونیم احادیث رو ما خودمون نکنیم ما نکنیم تذکر ندیم این نسیانه که ما این فراموشیش که ما خودمون گردن مرااحت گرفت پس غفلت و اعراض و پشت دادن نباید باشه نباید از ذکر خدا دور باشیم باور بکنید یک لحظه دور بشیم یک ساعت و دو ساعت سه ساعت بشینیم فوی له و لعب و زندگی و فلان خدا دور میشیم پس ایمان باید ایمان باید تقویت بشه ایمان باید باجوری از این چیزها با دوری از غفلت خداوند عدم ذکر عدم تذکر بروز و آخرت عدم دعوت عدم پند و اندرز دادن باعث ایمان تقویت بشه چون با پند اندرز دادن دعوت دادن علم عمل اینا هست که ایمان تقویت بشه برزخش اون چیزها که برزخش با خداوند ایمان راحت به نیبره و خلاصش میکنه خب این خلاصه بحث چیزهایی که ایمان رو تقویت میکنن میونه آخرین مسئله ای که امروز خواهیم داشت یک مسئله‌ای خلافی هست. جزء آخرین مباحثی هست که در مسئله ایمان بیان میشه. هرچند که این مسئله خاتمه مباحث ایمانمون نیست. مسئله استثناء در ایمان. مباحث دیگری هم هست جنس عملان، خواهد و من. بحث شرطیت بودن عمل شرط کمال رکن رکنیت بحث اختلافی که در بحث تارک صلات هست و بحث البانی این وقتی بحث که دو سه ماهی که من روش دارم کار میکنم بختی که نیاز به دقت داره که انسان کلام سلف رو بفهمه کلام علمای متقدمین رو بفهمه نسل سلف را بیاره جنس عمل چیه رهنیت چیه نماز چیه آیا واقعا انسان با عدم تکبیر تارک نماز کسی که نمازشو تکرار با بکثرت آیا واقعا مرجعی هست نیست آیا البانی مرجعی هست یا نیست آیا این تهمت درسته این مسائلی که ان شاء الله ما می‌خوام بیانش بخونیم. و اینجا توضیحش بدیم در خاتمه مبحثه مباحث ایمان مسئله استثناء در ایمان استثناء یعنی اینکه یک شخصی بگه من انشالله مومنم سوال می... میشید شما مومنید من انشالله مومنم آیا این حرف درستی یا نه متکلمی از اشاعر و معتدله گفتن که واجبه باید بگی که من انشالله مومنم چرا؟ چون انسان خاتمه نمیدونه از کجا معلوم که از با ایمان از دنیا بره انسان نمیدونه خاتمه روی ایمان باشی یا نه چون من نمیدونم مؤمن از دنیا میرم یا کافر میگم چی من ان شاء مؤمنم به اعتبار عاقبتم به اعتبار عاقبتم پایان خاتمه زندگی میگم که ان شاء الله من مؤمنم از با ایمان از دنیا میام حالت دعا داره هم دعا و هم خبر ان که با ایمان از دنیا برم با یک امید و با یک تمام و یک وجه دیگرش واجبه در جایی که تذکیه نشه عدم تذکیه جایی که مثلا بلپرد بگی شما مؤمنی دار اگر بگیت من مؤمنم تنها تذکیه بشین خود از خود تعریف کردی و خودمان گفت بلا تو زد کنم فوست کن خودمان گفت که تذکیه هم نکنی پس اینجا باید بگیم چی؟ انشالله که من مؤمنم الله من مؤمنم این اما از نظر گفتن که استثناء در ایمان حرام استثناء یعنی انشاءالله من مؤمنم یعنی شک کردن در ایمانم ولی مؤمنم حتی میانیستم استثناء یعنی شک استثناء یعنی که تو خود تعریف میکنی از خود تعریف میکنی من مومنم، مومنم، انشاءالله من مومنم، یعنی مومن حقیقی هسته. به این علت که تذکیه در اشقاهت بود یا شد که در اشقاهت اومد، گفتن حرامه. حالا چیز توفیق توفیق بودیم؟ اینا میگن، هر دو دو تلیلشون قبید. اینا میگن حرام اینا میگن حلاله. اهل سنت، اومدن حد در سفر رو گرفتن. گفتن به دو اعتبار واجبه. و به دو اعتبار هم نه شما نه ما در اقوال سلف اگر رسیبی بگونیم اقوال صحابه و طابعی و همچین طابع طابعی میبینیم که زیاد رواید شده انشالله من مؤمنم از خدا میخوام که من مؤمن باشم زیاده و کراحت ندونستن چون هیچ کدومشو شک در ایمانشو ندلستن. نداشتن به دو اعتبار گفتن سلف واجبه به دو اعتبار یا بگیم جایزه و به دو اعتبار حرامه بچعد عباراتی جایزه اگر به اعتبار خاتمه باشد به اعتبار اینکه انسان از دنیا شما با ایمان از دنیا خیر رفت ان شاء با ایمان از دنیا رفت این استثناء جویز میتونه انسان بکنه میتونم یقینا بگم از باب تمنی و ترجیح نه من حتما از با ایمان از دنیا رفت از خدا میخوام که منو با ایمان از دنیا ببره و یا ازباب عدم تذکیه میخواد تذکیه نشه میخواد خوش از خوش تلن. تو مومن حقیق هستی؟ انشالله که من مومن. این اشکال نداره اشکال نداره نداره تره عدم تذکیه و عدم شناخت عاقبت انسان و به دو اعتبار حرامه اگر قدس شک داشته باشه شک در تصدیقه شک در ایمانش داشته باشه یا قسم تعریف از خودت داشته باشه حرامه. است. شخصی بخواد خودش تعریف تو مومن حقیقی هستی ان شاء الله من من حقیه حقیقی هستم یا مثلا به اعتبار یا به به خاطر شک در ایمان تو مؤمنی ان من مؤمنم بستگی به اون لذتی داره که حساب بشی سوال شد بستگی داره که چطور به این سوال پاسخ بدید پس بدون اعتبار جایزه و بدون اعتبار جایز نید. خلاصه بحث استثناء در ایمان استثناء در ایمانی که بحث بین سلف و خلف بوده خب مباحثی هم هست که حالا اگر هست مشکلی هست بهش پاسخ بدیم گفتیم که جایزه در دو حالت یکی اینکه بحث عدم شناخت آقبت باشه انسان از عاقبتش ندونه که الا با ایمان از دنیا خواهد رفت، جایزه که انسان بگه ان شاء الله من مؤمنم و همچنین به خاطر اینکه تذکیه نشه، اما جایی که میدونه تذکیه بشه، حرام است استثناء بشه. دو جا هست که حرام است از انسان استثناء بکنه. دو جا هست که حرام یک جا شک در تصدیقش، شک در ایمانش و جایی دیگر به خاطر تذکیه و به خاطر تعریف خودش. در این دو حالت حرام کس دسنابو کنه و شخص بگه من انشاءالله مؤمنم خف فکر کنم این درس به کافی باشه تا مسائل خلافی دیگرم باز بشه که مباحثی خیلی همونچنان نیست یک مباحثی هست که بعد میگرده به بحث خفن بغیر ما انزل الله که بعد میگرده به شرف که در نهایت نواقذ ایمان و توحید راکی میارند مثلا علمان میگن نواقذ ایمان بحث توثل به غیر خدا و خیلی از مسائل میشه در, در, در نواقذ ایمان که خود نواقذ, نواقذ ایمان نواقذ توحید هم هست لیکن یک مسئله خاصی هست وانا مسئله نماز و جنس عمل آیا یک شخصی که بگه من مؤمنم ولی نمیتونم عمل بکنم نمیخوام عمل بکنم آیا این شخص نماز روش خونده میشه؟ نمیشه؟ آیا این شخص مومن هست؟ نیست؟ چه حق میداره در نظر ما؟ این مسئله هست که ما لده دستیر بعد مفرح خواهیم کرده الله و به اذنه و به عوله و به حوله و قوته که سوالی مداره در این زمینه که بحث شده سبحانه کلنا بحمده که سبحانه کلنا بحمده